در نوزده سالگی، جز در موردهایی خیلی نادر، کمتر تر پیش آمدی بود که اسباب تفریح من نمیشد. ریچفیلد و خانم کرامر هر بلایی بود بر سر من آوردند، اما تنها کاری که نکردن این بود که لبخن بر لب من بیاورند. نقاشی های آنها را که بررسی می کردم، سه چهار بار وسوسه شدم از جا برخیزم و بروم به آقای یوشتو به طور غیر رسمی اعتراض کنم. اما به روشنی نمیدانستم که اعتراضم چه صورتی به خود می‌گیرد. فکر می‌کنم از این میترسیدم که وقتی بالای سر او می رسیدم تنها به صدای بلند می‌گفتم مادر من مرده و من باید با شوهر جذاب او زندگی کنم و کسی تو نیویورک فرانسوی حرف نمی‌زنه و تو اتاق پسرتون یه صندلی هم پیدا نمی‌شه. اون وقت چطور انتظار دارین که به این دو آدم دیوونه راه رسم نقاشی کردن یاد بدم؟ دست آخر از آنجا که در تحمل نومیدی استاد شده بودم از روی صندلی تکان نخوردم. پاکت دانشوی سوم را باز کردم. دانشوی سوم من راهبه‌ای بود از گروه خواهران یوسف قدیس به نام خواهر ایرما که توی مدرسه ابتدایی یک دیر بیرون از تارانتو آشپزی و نقاشی تدریس کرد درست نمیدانم برای توصیف چیزهای پاکت او از کجا شروع کنم. ابتدا باید بگویم که خواهر ایرما به جای عکس خود بدون توضیح عکسی فوری از دی را فرستاده بود همچنین گمان میکنم سطری از پرسش را که دانشجو باید سن خود را مینوشت خالی گذاشته بود. به جز این دو مورد پرسش نامه را چنان پر کرده بود که گویی هیچ پرسش ای توی این دنیا ارزش پر کردن ندارد توی دیترویت میشیگان متولد و بزرگ شده بود جایی که پدرش بازرس اتومبیل فورد بود تحصیلات عالی او منحصر به یک سال تحصیل در دبیرستان بود در نقاشی آموزش رسمی ندیده بود نوشته بود تنها به این دلیل به کار تدریس پرداخته که خواهر فلان قرار این کار را گذاشته و پدر زیمرمان نامی که به خصوص چشم مرا گرفت چون نام دندان پزشکی بود که هشتا از تندانهایم را کشیده بود پدر زیمرمان او را انتخاب کرده بود که پرسش را پر کند. نوشته بود، سی و چهار دختر بچه در کلاس آشپزی و 18 دختر بچه در کلاس نقاشی دارد. سرگرمیهایش مهرورزی با پروردگار و کلام پروردگار بود و جماوری برگ وقتی که روی زمین ریخته باشند. نقاش محبوبش داگلاس بانتینگ بود. نامی که بدم نمیآید بگویم سال هرجا هر جا به دنبالش گشتم به بمبس رسیدم. نوشته بود که شاگردانش همیشه دوست دارند، آدمها را در حال دویدن نقاشی کنند، و این کاری است که من سررشته از آن ندارم. نوشته بود که بسیار کار خواهد کرد تا بهتر نقاشی کند، و اظهار امیدواری کرده بود که نسبت به کارش زیاد بی نشان ندهیم. روی هم رفته شش نمونه از آثارش را با پاکت فرستاده بود. آثارش همه بدون امضا بود، که موضوعی بیاهمیت است، اما در آن وقت و با آن مکان نامأنوس اسباب تفریح من شد. نقاشی های بامبی کرامر رو ریچفید یا امضای آنها را داشت یا حروف اول اسمشان را که تا اندازی آدم را خشمگین می‌کرد. پس از گذشت سیزده سال نه تنها هر شش نمونه نقاشی ایرما را به یاد دارم بلکه چهار تا از آنها گاهی چنان به روشنی در حافظم نقش میبندد که آرامش خاطرم را بر هم زند. بهترین نقاشی او با آبرنگ و روی کاغذ قهوه‌ای کشیده شده بود. کاغذ قهوه‌ای به خصوص کاغذ بسته‌بندی برای نقاشی کردن بسیار دلچسب و راحت است. خیلی از هنرمندان با تجربه به انگامی که آسافاس از آن استفاده کردند. این نقاشی با وجود اندازه محدود 20 در 25 سانتی‌متر تجسمی بود از مسی با جزئیات بسیار که او را به سوی آرامگاهش در باغ یوسف آریماتا می بردند. در قسمت جلوی نقاشی طرف راست دو مرد که نوکرهای یوسف بودند جنازه را با بی غیدی یوسف آریماتا درست در پشت آنها بود و با وجود حضور در چنان موقعیتی تا اندازی بیش از حد سینه پیش داده بود به دنبال او و با فاصلهی که حکایت از رعایت احترام می کرد زنان جلیله همراه با انبوه ناخانده ی سوگوارها، تماشاچیها، بچه ها و دقیقا سه شیاد بی ایمان که قند توی دلشان آب کرده بودند، راه می رفتند. به نظر من چهره برجسته نقاشی زنی بود در قسمت جلو و طرف چپ که رو به بیننده داشت. دست راستش را بالایی سر برده بود و با ترس و لرز به کسی شاید بچهش، شوهرش یا احتمالاً بیننده اشاره می‌کرد که هر کاری دارد زمین بگذارد و به شتاب برود. دو زن در ردیف جلوی جمعیت حالی از نور چهرهشان را پوشانده بود. من که کتاب مقدس در دست نداشتم، توانستم تا حدودی هویتشان را به حدس دریابم اما مریم مشدریه را بیدرنگ به جا آوردم. یقین هم داشتم که درست به جا آوردم. او در وسط نقاشی در قسمت جلو با دستهای کشیده در راستای تن ظاهرا جدا از جمعیت قدم بر می داشت. به ظاهر هیچ تکی از قمش را بر آستی نبسته بود. در حقیقت هیچ نشانه‌ای که ارتباط کنونی و رشک انگیز او را با مرده نشان دهد در او دیده چهره او مانند چهره دیگران در نقاشی با رنگ صورتی آماده و ارزان قیمت پرداخت شده بود نکته دردناک که به روشنی دیده میشد این بود که خواهر ایرما پی برده بود که رنگ مطلوب نبوده و ناسنجیده تا آنجا که در توان داشته تلاش کرده بود تا به نحوی رنگ دلخواه را دربیاورد. بیاورد نقص عمده دیگری در نقاشی به چشم نمیخورد یعنی دیگر از نقصی که قابل طرح باشد خبری نبود به طور خلاصه نقاشی از زیر دست هنرمندی بیرون آمده بود که بسیار بسیار با استعداد بود و خدا میداند که چند ساعت کار سخت صرف شده بود. البته یکی از اولین اکسال عملهای من این بود که پاکت خواهر ایرما را در بغل بگیرم و به سوی آقای یوشوتا پرواز کنم. اما یک بار دیگر از جاتکان نمی نمیخواستم این خطر را به جان بخرم که خواهر ایرما را از چنگم در بیاورم. دست آخر در پاکت را به دقت بستم و در یک طرف میز گذاشتم. به این در خوش کردم که آن شب در وقت فراغت رویش کار کنم. سپس با ای که کمتر در خود سراخ داشتم و کمابیش با حسن نیت بعد از ظهر به تسیی چند نقاشی از چند زن و مرد گذراندم که آر و ریچفیلد با حالات اشرافی و زننده کشیده بود. نزدیکی های نهار سه دکمه پیراهنم را باز کردم و پاکت خوهر ایرما را جایی پنهان کردم که نه دست دوست و نه برای رعایت ایمنی دست خانم آقای یشوتا به آن نرسد. شام شب در مدرسه دوستاران و استادان دیرین در سکوت اما با نظمی آهنین صرف می خانم یشوتا در ساعت پنجانین بیدرنگ از پشت میزش بر می و برای تهیه شام به طبقه بالا می رفت. و سر ساعت شش آقای شتو و من مثل همیشه به ستون یک به دنبالش میرفتیم مسترا رفتن خواه برای کار ضروری یا دست و صورت شستن قدقم بود هر حال هیچ شبی مثل آن شب که پاکت خواهر ایرماسی ماسینه هم را گرم کرد احساس آرامش نکردم در حقیقت در سر میز شام هیچ تا آن اندازه پا از گلیم خود دراز نکرده بودم داستان نابی درباره پیکاسو که تازه شنیده بودم و باید برای روز مبادا می گذاشتم تقریف کردم. آقای یشتا به ندرت سر از روزنامه بر می داشت تا به من گوش بدهد. اما خانم یشتا ظاهرا اکسال عمل داد یا بهتر گفته شود بدون اکسال عمل نماند. به هر حال وقتی داستان را تمام کردم برای اولین بار از صبح آن روز که پرسیده بود تخم مرغ می خواهم یا نه صحبت کرد. به من گفت که اگر در اتاقتان به صندلی نیاز دارید رو در واسیی نکنید. بیدرنگ گفتم: خیر، خیر، متشکرم خانم گفتم آنطور که مخده ها را به دیوار تکیه دادهاند فرصت خوبی است که به تمرین بپردازم به و پشتم را راست کنم. بلند شدم ایستادم تا به اون نشان بدهم که پشتم چقدر خمیده است. پس از شام که خانم و آقای شتاب به زبان ژاپنی درباره موضوعی جنجالی به گومگو داشتند عضر خواستم و از سر میز بلند شدم آقای شتاب چنان نگاهی به من انداخت که گویی میخواست ببیند که اصلا چطور از آشپزخانه سر درآوردهام اما سر داد و من به سرعت از راه را گذشتم و توی اتاقم رفتم چراغ بالای سر را رو روشن کردم و در را بستم مدادهای نقاشی را از جیب بیرون آوردم و روی یکی از مخددهای های کفه اتاق نشستم. و در حالی که هرچه لازم داشتم جلوی رویم روی زمین پخش کرده بودم تا ساعت چهار صبح به چیزهایی رسیدم که خیال می کردم از نظر هنری نیازهای ضروری خوهر است. اولین کاری که کردم این بود که ده دوازده ترهم مدادی کشیدم. به جایی اینکه به اتاق مربیان در طبقه پایین بروم و کاغذ نقاشی بردارم ترها را رو روی هر دو طرف کاغذ یادداشت شخصی خود کشیدم پس از این کار نامی مفصل کمابیش بیش بی نوشتم من در همه زندگی آدمی بسیار صرف جو بودم. بنابراین پیشنویس ای را که آن شب ماه اوت 1939 نوشتم هنوز نگه داشتم می توانم سراسر نامه را کلمه به کلمه در اینجا بیاورم اما ضرورت ندارد قسمت بیشتر نامه را روی کلمه بیشتر تاکید می کنم. به این موضوع اختصاص دادم که در کجا و چطور در کشیدن بهترین نقاشی خود دچار دردسر شده است. به خصوص در کاربرد رنگ ها. چند ابزار هنری را که فکر می کردم برای او ضروری است، نام بردم و قیمت تقریبی آنها را اضافه کردم. پرسیدم که داگلاس بانتین کیست؟ پرسیدم در کجا می توانم برخی برخیاسرش را ببینم. پرسیدم: و میدانستم که کاری مخاطره آمیز میکنم. که هیچگاه گراور نقاشی های آنتنل و داماسینا را دیده از یا نه. با احترام از او خواهش کردم که سن خود را بنویسد و با شرح و بست به او اطمینان دادم که این اطلاع اگر در اختیار من گذاشته شود جایی درس باز نمی کند. نوشتم که تنها دلیل این کار این است که میخواهم آموزش من تأثیر بیشتری داشته باشد. به همین شیوه پرسیدم که اجازه دارد توی دیر کسی به دیدارش برود یا نه. گمان می کنم بهتر باشد از سطرهای آخر را با همه طولانی بودن در اینجا بیاورم. همان جمله‌ها، نقطه و ها در ضمن اگر به زبان فرانسه تسلط دارید امیدوارم به آگاهی من برسانید. چون از آنجا که در جوانی بیشتر عمر من در پاریس گذشته می توانم افکارم را بسیار دقیق به این زبان بیان کنم. چون بسیار علاقه دارید که آدمها را در حالت دویدن نقاشی کنید چند ترک خودم کشیدم و ممکن است به کارتان بخورد زمیمه این نامه میفرستم تا شگرد کار را به شاگردان دیرتان بیاموزید. خواهید دید که کمابیش آنها را به سرعت کشیدم و به هیچ وجه کامل یا حتی قابل تعریف نیستند. اما اعتقاد دارم که اصول کاری را که به آنها ابراز علاقه کرده اید نشان خواهد داد. متاسفانه باید بگویم که شیوه تدریس مدیر این مدرسه بدون نظم است. خوشحالم که قبلا پیش‌فتایی کرده اید چون نمیدانم که او از من در تدریس شاگردان دیگر که بسیار عقب مانده و به خصوص کودنند چه انتظاری دارد. متاسفانه من منکر حقایق نخستینم. اما بدون شک از جهتی فرانسیس آسیسی قدیس را بسیار تحصیل می کنم. نمیدانم شما اطلاع کامل دارید که وقتی میخواستند یکی از چشمهای های او را منظورم فرانسی فرانسیس آسیسی قدیس است. میله آهنی داغ و سرخ شده بکشند چه سخنی گفت؟ گفتش این بود: برادراتش، خدا ترا زیبا و قوی و سودمند خلق کرد. دعا می کنم که نسبت به من با احترام رفتار کنی. به گمان من شما همین موضوع را کم و کمابیش بسیار زیبا در نقاشی نشان داده اید. راستی، اجازه میدهید بپرسم که زن آبی پوش جلوی نقاشی مریم مجددی است یا نه؟ البته منظورم همان نقاشی است که دربارش بحث می کردیم. اگر جز این باشد با تأسف باید بگویم که از خودم میوس می شوم. با این همه؟ همیتی هم ندارد امیدوارم تا هنگامی که دانشجوی مدرسه دوستاران و استادان دیرین هستید مرا کاملا در خدمت خودتان بدانید بیپرده بگویم که شما بسیار با استعدادید و چنانچه در طول یکی دو سال در نقاشی نابغه شوید سر سوزنی آور نیست بیهوده نیست که شما را در این زمینه تشویق میکنم. از همین روز که پرسیدم زن جوان آبی پوش جلوی نقاشی مریم مجدلی است یا نه چون اگر چنین باشد میترسم شما نبوق ذاتی خود را تا حدودی بیش از تمایلات مذهبی به کار گرفته باشید با این همه بقیده من جای نگرانی نیست با این امید که از سلامت کامل برخوردار باشید با احترام ارادتمند شما جان دو دومی اسمیت عضو هیئت مربیان مدرسه دوستداران استادان دیرین بعد و تحریر فراموش کردن بنویسم که دانشجویان موظفند دوشنبه ها یک هفته در میان پاکت های خود را ارائه دهند برای تکلیف بار اول خود لطفا برایم چند تر در هوای آزاد بکشید ترها را بسیار آزادانه و بدون تلاش زیاد بکشید البته من اطلاعی ندارم که توی دیر برای کشیدن نقاشی چقدر به شما وقت میدهند. و امیدوارم برایم بنویسید. نیز درخواست می لوازم ضروری را که ترکید کردم خریداری کنید چون میل دارم هرچه زودتر کار با رنگ و روغن را شروع کنید. اجازه بدهید بگویم که شما بیش از آن احساساتی هستید که پیوسته با آب رنگ کار کنید و دست به رنگ و روغن نبرید. من از گفتن این موضوع به هیچ وجه منظوری ندارم و نمیخواهم اسباب زحمت شما بشوم. راستش را بگویم، قصدم تعریف شماست. همچنین خواهش میکنم کنم همه ی آثار گذشته خودتان را که دم دست دارید برایم بفرستید. چون مشتاق دیدن آنها هستم. بدون شک، تا هنگامی که پاکت بعدی شما برسد، روزها برای من تحمل ناپذیر نخواهند بود. اگر به حساب دخالت در زندگی دیگران نگذارید این را بنویسم که بسیار سپاسگزار می شوم برایم بنویسید که راه بگی البته از جنبه معنوی برای تا رضایت بخش است یا نه؟ راستش را بگویم از هنگامی که جلت های سی و شش چهل و چهار و چهل و پنج آثار کلاسیک هاروارد را خواندم. سرگرمی من مطالعه در زمینه دینهای گوناگون شده است. من به خصوص از نظرات مارتین لوتر لذت میبرم که البته پروتستان بود. خواهش می کنم از این گفته من نرنجید. من از هیچ اصولی جانب داری نمی کنم. یعنی انجام چنین کاری جز به سرشت من نیست. سخن آخر را بنویسم. خواهش می کنم فراموش نکنید که ساعت های ملاقات خودتان را برایم بنویسید. چون همکنون تعطیلات آخر هفته بیکارم و احتمال دارد بر حسب اتفاق روز شنبه سری به پیرامون محل شما بزنم نیز خواهش میکنم فراموش نکنید در صورتی که به زبان فرانسه تسلطی دارید به اطلاع من برسانید. چون به سبب داشتن تربیت نادرست و متنوع دوران کودکی زبان انگلیسی من در بیان همه مفاهیم و معانی نسبتاً الکن است در حدود ساعت سه و نیم بامداد به خیابان رفتم و نامه ها و ترهایم را برای خواهر ایرما پست کردم سپس در حالی که از خوشحالی به راستی سر از پا نمیشناختم با انگشت های کرخت لباس هایم را درآوردم و توی رخت خواب رفتم پیش از اینکه به خواب روام دوباره از پشت دیوار اتاق خواب خانم و آقای یشوتو صدای ناله بلند شد پیش خود مجسم کردم که خانم و آقای یشوتو صبح پیش من آمدند و از من درخواست می کنند. التماس می کنند که مشکل ها را با همه جزئیات وحشتبار آن تا کلمه آخر به دقت گوش بدهم. همه چیز را به دقت می بینم. پشت میزه آشپسخانه میان آن دو می, می, و, می و به حرفهای تک تک آنها گوش می دهم. سرم را توی دست هایم گرفته و گوش می دهم. گوش می دهم. گوش می دهم. تا اینکه سرانجام کاسه صبرم لبریز می شود دستم را توی گلوی خانم ایوشاتو فرو می و سپس وقتی که کارها بر وفق مراد شد آثار خواهر ایرما را به خانم آغایی یوشاتو نشان می‌دهم و آنها در شادی من شریت می شوند